که آن مراشعه بکنن مطرح شده یه برده ما شد که همونی که به ذهنی ها مطرح کنیم باکه یه مقداری از کلماتی ها مطرح نشد با تعمال مذکرنا زکرنا من که اصلا این نه بحث چندان دقیق به نظر نمیرسته ولی اینکه که یعنی رو در کلماته علام آمده و دیگه حالا این این تقسیم سنایی باشه و سلاسی باشه و مراد ظاهری باشه اما ظاهری واقعی باشه دیگه نوبت به این بحث ها خوابی نخوابی نمیرسه از که دیروز بخشی رو که ما مطرح کردیم و از کردیم این بحث کلن به مرحله تنجز و خوفی برمیگرده که اعتبارات قانونی در به اصطلاح متعارف که حالا دارم دارن در قوانی میخواست مثل شریعت مقدسه چه بونه تنجز پیدا میکنه از شد که این یک مقدماتی میخواد که آیا تنجز مسابقه از ما فعلیت یا نه این رو باید اول اصبار خود که اینشالله خواهد آمد ولی به تو عمده دلیم ما هم سری اغلا هست خاصی که مثلا برخان خاصی نیست و اینشالله ارز خواهد شد که مقام تنجز اصافه غیر از مقام فعیلیت مقام فعیلیت همون ابلاغ و ارسال رسول و انزال کتبه لکن بعد بعد نسبت به مکلف هم حالت تنجز فکر روشه با اون ارتباطیست که مکلف با قانون میکنه که اصطلاح هم علم مکلفی حالا طریق منتوری یا هر رایی که هست خود به اصطلاح دیه که انشاءالله خلال از احسای روشن پس این بحث اولاً است برای این مقدمه که مرحله تنجیز خودش یک مرحله خاصی باشه که از کردیم عمده دیلم بر سری اوغلا هست یعنی بنای اوغلا در به طور کلی ادعاده قانون خاصی باشه این نظام معیل باشه بر همین از که یک مرحله بنامه تنجیز دارم و یک مرحله بنامه فعلیه این دوتا همه از همجد و ما ارز که مئیار در تنجز فیلان طبعا مراد ما در بحث احکام کلی کلیت راجب موجود خارجی بحث نمی کنیم که در اصول مناسبه احکام کلی در موضوعات خارجی یا در فرم متعرض می یا در مواردی مثل قواعد فقریه اونجا اون است. حالا یه ترگم هست که عده از قواعد فقریه اما تو اصول بیاریم اونم اشکال نداره در زهی به همین بحث تنجز. از قواهد فقیه هم زید لکن لیکن دوزه اصول آداتا نیست مناسبه یا با فقه یا مناسب از با مسئله فقیه هر صورتان اینجا که تنجز در حقیقت عبارت از ایجا وجود صورت و نقشی از اون حکم در ذهن مکلف، این رو باید یه مقداری روشی ده تو بحث تنجز و این صورت و نقش و انتباه یا ابدایی شده روی این باید بحث انجام بگیره بحث تنجز، بحث منجز، بحث خجر عبارت از اینه طبعا این صورتی که در ذهنه اش میبنده از جهات مختلفی مورد بحث یعنی از یک جهت مورد بحث است. مثلا یک این جهات اینه که این صورت از چه دلیلی پیدا شده؟ از کجا پیدا شده؟ از چه خجر که شده؟ از کتاب؟ از سنت، از اجماع؟ از حکم عبد؟ از فتواهی فوقا، از سیره متشرفه راهای مختلف بود در فقه آمدن برای هر کدام یک حکم خاص و قرار براره این رو عادتا ما تو بحث مسادر تشریع متعرض میشیم که اینجا نمیخواد وارز بشیم اما بعدها در مسئله ولزان به اینم حجت گفته میشید به مسادر تشریع هم حجت است. این بحث الان اینجا مسئله نظر نیست از لحاظ دیگری باز همین صورت ذهنی مورد توجه قرار میگیره کیا صورتی که انتباه از خارجیه یا صورتیست که نفس ابداع میکنه این برد این مورد اصولی هست و اون صورت خارجیه در کجا خوشیت دارن منجزن و اون صورت اداری هم در کجا منجزن این بحث هست و این همون است که ما تقصیل میکنیم که جسر به امارات و اصول امارات و ا صور انتباعیه می‌دونیم و اصول رو هم صور ادراکات ادراکات ادراکیه نفس که اینشالله همین امروز باز متعرضی این بحث خواهیم شد بحث ثبوتی راجب این صور هست و اون این که اصولا این منجز و این حجت به اسلام. آیا همشون از یک نباختن و اون که مثلا با در هر شریعتی در هر قانونی در هر نظامی در خودش منجزه خاصی، حجت خاصی رو تعیین بکنه یا اینها تخصیل میشن به این معناه که ما یک منجزی داریم که در عامه قوانین هست حجتی داریم که در عامه قوانین هست و حجتی داریم که در خصوص مثلا شریعت مقدس پس یک حجت عام میشه، یک حجت خاص این هم بحثید که مفتح میشه و اشاره اجمالیش اینه بنای بقاهای ما فعلا برینه که قدر متعقل قدر اطمینان ظهور عرفی این ستا حجت آن باشه این در تمام اعتراض قانونی این ستا حجت آن مگر در این باشه یکی قدر یکی اطمینان یکی هم علم عرفی یا ظهور وضوع هر کچی چیزی واضح باشه ظاهر باشه که اصطلاحا ماش از میشیم علم عرفی نه علم اصطلاحی قدر اصطلاحی این سه چیز رو بنا گذاشتن که حجت باشه خب مثل مربون استاد میفرمه اضافه بردین خبر واحد هم همینطوره مربون استاد میفرمه خبر سقن همینطوره حجت عمومیست لذا ما یکی از یکی از بحثای مهم ما اون مقداری که حجیتش عمومیست اما مثلا مشغور احل سنت بایده که خبر عبر حجت هم بودید چاره افت حجته اینا رو خیلی باید کار تمام اینا باید مرز بندی بشه مثلا اجماع رو اونا معتقدن که شاره گفته که اجماع مثلا جز مسادر تشریده آنون به بحث نهار شده ماها بنایه فوقهای ما بنی شده که اجماع طریقه ما. آمنه. خب این باید روشن بشه که چه نقطهی وجود داره که آیا اجماع طبق تصورات ما یا یک طبق تصور کلی بشریه ما صرف اگر فرسون کنیم با قول یا اندیشمندان مکتب مارکسیسم مارکسیسم یک مطلبی رو بگم بگم چون چند نفر از مارکسیست با این مطلب گفتن پس این نظر مافستم ها از مجموعه آرا رأی صاحب مکتب استنتاج بکنیم این میشه حجت عمومی اگر گفتیم نه این قاعده عمومی ثابت نیست اما ما از اتفاق ها رأی امام رو به خاطر قاعده لطف مثلا به خاطر یک خاصیت که در مکتب شیعه هستفاده استفاده کنیم در هر زمانی یک امام معصوم باشه پس اگر علماء شیعه اجماع کردن به نه یکی کشو قبل امام بکنی در اون صورت پس این هم یک بحث بسیار رویشهی و بسیار مفید راز که منجز به دو قسم اساسی تقسیم میشه، یکی ایکی منجز آم مراد از عام نه اینکه که صد در صد جمعیه و صد در جمعی نه آم نه که متعارف پیش اغلا روی این حساب میکنن اختصاص به اسلام و مسیحیت و یهودیت و حتی اوامر شخصی پیدر رو بزرزن به شوهر شوهر بزن مثل مولا به عب اوامر شخصی استاندار به احالی اون استان شهردار به احالی شهرد به لاخره. حتی در اوامر خیلی شخصی هم یک حجت و منجز عمومی وجود داره که تقریبا این ستاش متفقه تقریبا یکی خطر هست یکی اطمینان هست و یکی هم مسئله یه وضوع ولی قطع اصطلاحی نباشی ظهور و عرفی وضوع علم و عرفی اصطلاح هست علم و عرفی خب از هم ارصد مثل آرخوی میفرمون بله خبر واحد هم همینطوره اغلا قبول برن بشون که اغلا قبول برن میشه حجت آم اون آنی که میگن نه خبر عرض اونا میگن نه میشه حجت خاص. مثلا مسئله خود حجیت خبر یکی از مسائل اساسی و فوق العاده مهم در فقه ما در فقه اسلامی و در کل تفکرات اسلامی یک مسئله فوق العاده مهمه خب یکی از نکات در همین حجیت خبر اینه آیا خبری که حجیت به یک معیار و داریم یا اصلا معیار و نداره در حجیت و مراز ما از حجیت خبر در معیار و یعنی خبری که مفید قطع و وصول و اطمینان و علم معرفی نباشه لگی به اون ستارتی که اون خودشون حجت ده شد مراد ما خبریه که اون تسا نرسد اگه به اون ستارتی بی خودشون حجت بیجه بحث اگر خبر ثقی بود که به اون تسا نرسید منظور استاد فهم اوغلا اینم حساب میکنن چون رامی سقر به مجرد را به راوی تعبوت پیدا نکنم به خبر ولو حسوح نیاد ولو قرد نیاد ولو زور و عرفی و علم و عرفی هم نماشه روشن شد پس مراد از جهد تعبوتی خبر اینه مراد این است که خبر به عنوانه ولو به اون سه عنوان منتعی نشه لازم نیست که به اون سه عنوان منتعی بشه ولی اگر پس بگیم قرفت هر جا راوی سه بود عادتا ما حسوح پیدا کنیم. عادتاً اسمی ناجده اون بحث خارج میشه از بحث وقت لذا عمقه زیادیه زیادیه از فقاها و اصولین اسلامی اعتقادشونه که همچین نکتی و وجود نداره چون سقر قبول بکنیم بله اگر به ساقت معدی شد به حسوق قبول میکنیم معدی نشد قبول نمی کنیم پس اون نکتی اساسی در حقیقت در اختلاف بین استاد و بین مشغول در اینجاست از درستان نه و شیعه هم داریم کسیمی که غالبی این غیر باشن مش... مثلا فرصوی مرمون و و سایف فتواش بگه اینه که خبر واحدی که در یکی از کتب مشغوله باشه همون جهه خب کتب مشهور شامل کتب صدوق اینجا معامل اخبار و مثلا خصال و خب که خود صدوق هم به خیلی از اونها فتوانه داده شامل اونها میشه که خود صد خب این چون حجیت تعمل کنه این که خبری که در یکی از کتب مشهور مشروعه باشه حجته این قاعدتاً حجته خاصه یه حجته آم نمیشه باشه ولی ازا دلیل مرموم صاحب و بعضی از روایات که میگه کتابهایی بوده مال حساب خواب زیر خواب دفت عمل کنیم ما میتونم بله میگه تا سعب و ترقوب ذرافت نقطه ها را همیشه در نظر بگیریم مثل ایشون قائل به تعبود قده از اهلسانت گن تعبود داریم اینجا هستم فاسقوندنه و این فتر بگه پس این مساله را خیلی دقت کنیم ما در مبارس اصولی خودمون حجت از دو زاویه بررسی میشه. یکی حجت عام یعنی حجتی که در تمام در نه همه، در غالب امور قانونی مورد استناد قرار میگیره میتونن بهشه استناد بکنن این حجت آمنی یکی هم حجت خاص مثلا در این قانون در این شریعه فرص کنه اجماع علما به نفس کاشف یعنی حجیت نداره ولکه در تفکر شیعی به خاطر اینکه که کاشف از مثلا این میشه تریر خاص حجت خاص نه دیگه تعبود رفتی اصول نه شو روزگیت اشو موقت کلام رو تشریح دادیم هر کاری یه حجت عام داریم حجت آم که تقریبا معظم عقلا در سیر قانونی و اعتبارات قانونی قبول داره برایو شخصی حجت آم رو چه چیزی قرار بدیم یکی خبر یکی اسمینان و یکی هم ذرو علم و عرفی یعنی ذرو فواظه این اسمش مش علم عرفی غیر از اینها اینها محل کلام میشه مثلا آقای خوبی میفرما خبر سقم حجت عام الان کلامیشون تغییر کردیم ایشون می ولو اگر مرادیشان چیه خوبی قطع کنیم مرادیشان است که خبر سقهی که مفید غصوب و علم و عرفی و قرق نواشه اولا به اونها که منطقی روست نیست ایشون می که اغلا هم به ما اغلا بنایی دارن که این خبر رو قبول کنن چون مراوی سقه هست این روشن شد؟ با هم با هم با هم هم هم با و همه وجهه ها با دلیل بیاد احسن تو لذا هر جا دلیل من قبول نیست نه قبول قبولم دستا وصول نمیگیش مثلا تعارض هیچ اینطور میشه مثلا اهل سنت میگن شارع گو اینجا اكم فاصون و بنو تبعید میگن اگه اذن قبول کنیم میخواد وصول بیاد نیاد میخواد قد بیاد نیاد میخواد علم و دقت کن مردم صاحب وسائل میگه روایت داریم که امام فرمود کتابهایی که مشهور و معروف بوده روایتش قبول کنید دلش می‌خواد وصول بیاد نه. خودت چجور در کتاب اختصار روایت رو عمل نش نکرده اما شما قبول کنید صاحب وسائل اینه این میشه تعبود این بحث یعنی تعبود عام و حجت عام و حجت خاص یکی از دراسات مهم اصوله یعنی شما در تمام حجج باید این راه رو طی بکنید که اگر حجت عامه اگر حجت عام شد خب مطلب خوبی است، اما اثبات حجت عام کار مشکلی است. اون ان شاءالله عرض حجیت عمومی چون یک نکته ای در حجیت الان نمیگم میو از بحث خارج بشن یه بحث کافی از بحث خارج. پس این هم بحث تقسیم دیگری به لحاظ حجت تقسیم چهارم به لحاظ حجت که بیشتر بین اصولین شیعه ما بعد از مرحوم شيخ انصاری متن شده بحث معروفی است که حالا فکر نمی‌کنم تأثرو اون بحث فلسفی بوده چون یه قاعده فلسفی معروف هست که کل ما به عرز و بدنیا ته اله ما بزار و دو سوم از كل به دوم, و دوم به دوم سوم از دو به نسبت رطوبت هر چیز با آب آو رطوبت آب به نسبت یه تصوری که این قاعده فلسفی موجب بوده از چیز دیگری ایده ایشون ذکر کرده اما فکر نمی‌کنم این علت باشه و با اینکه این که اگر ما مسئله حجیت رو مطرح کردیم و بنام شد که شاره یا یک مقنم بیاد یک چیز رو حجت داده پس ما طبقه وارده باید حجت ذاتی هم داشته باشیم که کل ما بل عرض لابود ومیان پیه لما بزام مثلا اگر خبر وارد حجت شعب بودی یعنی بل عرضه منطقی باید بشید یک چیزی که حجت ذاتی است و لذا این بحث رو ما از این زاویه سوال. آیا در باب منجز و در باب حجت دقیقاً ما خود منجز ذاتی داریم یا شون اعتباری هم؟ غارت و معاملات یکیش اعتبارش آم پیش اامه مردمه هم؟ یکیش اعتبار در طریق قانون خاص نظام خاصه هم؟ پس همه اعتباری هم؟ ما منجز و حجت ذاتی نداریم این مطلب از زمان شیخ طعن مطرح شده در کتاب سابقین هم شیعه و هم سنی من نگیدم خیلی من استغراق کاملیه خیلی نگاه نگردادم اما یادم نمیاد جای این بحثه اما از زمان شیخ بیم به ما بعد کاملا مطرح شده و چون معلومه شیخ هم و جد قطع و ذاتی میدونه بعضا در این که مراد از ذاتی ایشون چیه بحث شده ان این بحث ما میذاریم توی بحث قد علای واله اینم یکی از بحثهای دیگه پس بحث اساسی در اینجا این است که آیا در مقوله حجیت و در مقوله منجز ما منجز و حجت ذاتی داریم؟ یعنی ما به جای این بحثی ای که الان متعارف یعس الله و تعالیه عز و به جای اون حرفا بحث از این زاویه مطرح کردیم به جای اون طریقی که متعارفه از این زاویه آیا ما حجت ذاتی داریم؟ اولا باید تبیین بشه که ما از حجت ذاتی چی؟ ما نظر خودمون ما شاءالله عرض می‌کنیم اجمال الان عرض می‌کنم ما به نظر ما حجیت به معنای مایسهل احتجاج و به, به معنای منجزه اعتبارات قانونی این حجیت خودش طبیعتش یک پدیده اجتماعی است اصلا خودش یک پدیده فردی نیست عام نیست یک پدیده اجتماعی است اگر پدیده اجتماعی شد قطعا در ذاتیت معنا نداره هر چن وقت موضوعی تصویر می‌کنیم این یک ای پدیده اجتماعی است در جامعه بشری فرق قواعد و معینی جاری میشه مثلا اصل حجیت بحثی رو شما ما به عنوان زیربنای این بحث قرار دادیم این که حجیت یه قضیه فرضی مثلا اگر اینطور که بعضی‌ها گفتن حجیت یعنی لزوم جری عملی بر طبق صورت ذهنی جری عملی یعنی اینا تصور کردن که در اینجا میشه ذاتی اما ما ایام یعنی می‌گیم حجیت نمایته یعنی حل احتجاج بین طرفین حجتیه که میشی یعنی اونی که سبب و تکلیف میشه این حجت خیلی ساده و تیم هر چی که موجب تنجذو تکلیف بشه اسمش حجته خب تکلیف در کجا سبب میشه تو جامعه انسانی که تو کوه نشسته که تکلیف نداری چه اصلا تکلیف قانون یک پدیده اجتماعی اون تکلیف ما اول تفسیر خاصی میکنه اون تکریف نصف به خالت بعد از آمانن پیغمبره پیغمبر که آماندهش نگه که حجت چی؟ بلا؟ اشکال ندار اون اگر خودش باشه اون قانون میگه از اون پیغمبر با حضرت آدم بقوله شما عبال انبیاء و حضرت آدم میگه من کجا بفهمم قانون رو مثلا از شما عقد بفرم اگه شما زید حضرت هبا بوده حضرت هبا عقد بقوله ولی خلیه سوال که پیشون بده همینطوره انجام بده این مرحله ای رو داشته باشه احسن و... یعنی وقتی که احساس تکلیف کرد اما تکلیف نموت کنه باز مثلا اما وقتی یعنی هم اساسا تکلیف الهی هم خیلی از آن مثلا در ذون از ساده مثلا جمع بین یعنی از اون در و تعالی بو جریان بین مقام این حالا که از هم تکلیف بین که حالا فرض قبول لیکن به هر حال همون تکلیح منجز بودم علم ببینید علم قبول که از ایز من علم رو که من خودم از اسم بردم که منجزه این نمر کلام آیا ذاتش منجزه یا بنای اغلا کلن بر اینه اکثر بناه اغلا آیا قابل تفکیک نیست مثلا در یک جامعه بگه اگر علمم پیدا کریخه نباز اینقدر بایدداری تجربه بکنید نگاه بکنید سوال بکنید. حتی اگر کسی به تو قبول نکنی تا خود مستقیم به مجلس تماس بگیرید مستقیم مثلا با اون سخنبوی رید بعدم قانون تو پشت تلویزی مثلا پشت اون اینترنت ببینید تدوین شده نوشته شده تفصیل میشه در این صورت در تو حجه داافه او ممکنه تو موش این فقط قدررا هر جاده میام ما این مخه حجیت از قطع مستحیم نیست. خوب دقت همین که نیست میشه اجتماعی میشه پدیده‌ای بسیار اعتباری ذاتی نیست خوب دقت هدف این از کلام اما این که عغلا حساب میکنن ما دو تا اضافه کردیم میشه چی میگه گفتین قوه شنوای هم حساب میکنن رو علم اورفیان که وجود یک مسئله ظهور پیدا میکنه ظهور پیدا میکنه بهن نیاز میکنه خاص این مادر کلام در تفسیرین اعتماد کی یک امر ذاتی یا یک امر اعتباریه فقط اعتبار دو جوره یکی اعتبار اکثر و یکی اعتبار نظام معین دو جوره اعتباره و این اعتبار با تفسیر بشه اعتبار خاصی که پس یک بحث مهمی که در این بحثای آینده توی حجج و امارات و وقت تنزیز هست اینه از دقیقی این خیلی تأثیر چیز نداره خب یک آثار خاصی درش بار میشه این مطلب چهارم ما شد مطلب پنجم ما محلب که البته در اینجا اشاراتی به شده اما بیشتر دستش به قول ما در جلده اول بوده با ما که حجیت چه کار میکنه که این بحث در حقیقت باید اول بحث باشه حالا ما اردوش پنجامش ده باشه این ما همونم مرحبت نکردیم این برس بسیار رسیار مثلا یکی از تصوراتی که شایع بوده این حجیت جعل حکم ظاهری میکنه اگر زراره آمده یک خبری داد ما خواستیم به خبر زراره عمل بکنیم یک حکم ظاهری طبق این خبر هست لذا یکی از بحثای بسیار مهم این حجیت چه در اصول و چه در امارات حد و حدودش غیر از حالایی یک تفسیری اول باید در تحقیقت حجیت اعتباری چیه کارش چیه بحثی که در بحث اجزا گذشت ناظر به این بود که اینشانا در خلال آدتا ماها الان در اصول ما این بحث حقیقت حجیت و منعیلی که داره هم تو اعمال حجیت زن متعرض میشن نقرد لیکن فرق نمی کنه اینه چون قرص و ذاتی میدونستن تو زن به نظر ما هیچ فرق نمی کنه اینشانا در خلال بحث های ایند این پنج بحث و پنج زاویه بحث در و خجرد و اصول عملیه. این تا اینجا شده روشن شد. دیگه ما بین راهی که آبراستن نه اون وقت ما یه بحثی بکنیم بحث دومش بود یا سومش سو که گفتیم اده از خجرد ادراکات انتباعی ما هستن. صورت انتباعی هستن. اد... از هم و اده و خب اون تقسیمو جزگرمش یعنی پنجم ما بود دیگه اصلاش خودش حفظاست. نه. حفظاست نه یکیش این که حکم ظاهریه یکیش این که معذر و منجزه جلد. یکیش این که تکیه علم حالا بخوام بگم توی میگی یکیش جعل بدل چند قول ما یکیش مصدر سلوکیه اون معذر و منجز یکیشه معذر و منجز هر جعل بدل هر حفظ ظاهری هست مصدر سلوکی از تکیه کش هست که هر کدوم قائل داره من هم بنا؟ شاید یه همونه من همونه یه شوخی <تصحیح> بنات که حرفای که موضوع باشه اگر بنات با که پنشینش تا مربنا با هم دیگه همونه بسازه پس داریم لا تارلا دا زمانو می <تصحیح> کنیم <تصحیح> اش بحشی حرفای لا تار بود یه جمع شما جعل حكم ظاهری یکی اگر جعل حکم ظاهری شد یکی موعذر و منجز یکی از زمین تاجمه و... خیلی داهری خوب خلاص اجازه این اینجا چیزی که الان باید توضیح بدیم چون اینجا مباحث سوال بردن روی امارات و جزاء کردن از اصول و ما از کردیم هر دوشون منجزن فرق بین این مقدار را این قسمت صحبت میکنه بقیهش ان شاءالله در جای خودش اینا این مباحثی رو که مطرح کردیم ان هر هرکد در جای خودش اینجا به نحو اجمال فرق بین امارات و اصول رو به لحاظ منجزیت مطرح چون اشاره کردم سوم بود، دوم بود سوم بود این رو یک توضیحی ارزمیدم بله میگم دوم ما بود مثلا 5 تا که ذکر کردیم دومی و سوم به اصول و امارات کردیم در بابه حجیت و منجزی و این منجز هم روشنش بود منجز قوانین انتباع صورت ذهنی این صورت ذهنی رو ما میخوایم. چرا صورت ذهنی رو ما آوردیم در مقابل مثل فیزیکی ما صورت ذهنی واقع رو هست واقع مخصوصه در قوانین باز صورت ذهنی باشیم این نور کلام بحثایی که ما در وجهت میکنیم یه صورت ذهنی رو حال باقیم تکرار رو منشه صورت ذهنی از کجاست؟ از دلیل گرفته شده. که این بحث مسادر تشریعه دو این صورت ذهنی انتباعیست یا ابداعی نفسه سه این صورت ذهنی آیا بین همه اغلاح هست یا داعت دائمان از یک نظام معین سرششون میگیره. چهار این صورت نفسی حجیت و این صورت ذهنی دائمان اعتباریست یا یک قسمتی اعتباریست یک قسمتی ذاتیست پنج حقیقت این حجیت و حقیقت این تنجیست و آثاری که برایش بار میشه به لحاظه جعل حکم ذاری بره این تا دابت اون بحث دوم باید مقداری الان باز صحبت بکنیم از شد که اون سوار زهنی نفس ما بعضیاش انتباعی مثلا به شما میگن زید آمد به شما زراره بگه امامو ساده فرامون لحمه ارنر بوشت خربوش حرامه شما کار نمی کنید شما کلامو زراره میشینید صورت نفسی پیدا میشین اما گاهی وقت هم است. مثل اینکه یه خدری زراره گفته مثلا فلان چیز حرامه محمد المسلم در همون جلسه بوده مثلا محمد المسلم نرکت گفته امام فراندن گوشت شغال حرامه اون آقا میگه که نه من خدمت امام بودم فراندن گوشت مثلا روبا حرامه درگاه هم بین روبا واقعی واحده بین روبا و بین شغال شده حالا گوشت این حرامه گوشت اون مثلا فرس اینجا رو است... می‌دونیم یکی هم صادر شده از ما استلاحاً اسمی احتیاط احتیاط یک نوع صورت ادعای نفسه یعنی نفس وقتی که میدونه یکی از دو اینا از امام صادر شده نمیتونه تشریف بده کدوم یکیه حکم میکنه شما از هر دو اجتناف رو کنم اینشالله از خایین که اینها رو تصدیرهای خاص خودش داریم احتیاط عبارت از احتمالیست که در داره بسته داده میشه. و در جایی هم تصویر میشه که علم به نحوه تحرییت باشه نه موضوعی چون به هم موضوعی یعنی حصول علم و شرزه اونجا دیگه جای احتیاد نیست چون علم بزدر شده. و نسبت واحده باشه این ضوااپ نیست که در احتیاطه یعنی شما پنجاه درصد میدونین خبر ظراره پنجاه درصد خبر محمد مطلا فقط که گفته شغ گفته پرسی اون با میمثل یکی گفته خرگ گفت ججیتتیمثل مثال. ایکی این دوتاش اختلاف هست و املا اگر این دایره بسته نباشه ابتداعا احتمال کنید اینجای برای هست پس در احتیاط یک دایره بسته میخواد علم به نحو طریقیت باشه نسبتش هم علا سوا باشه اگر روایت زراره صحیح باشه 80% برای شما زنیاره برای روایت ما عنویسل مرسل از توسندش هم ده درصد. اینجا دیگه باز تأثیر نداره اون علم اجماعی شما تأثیر پیدا نمیکنه. اون نکات خاصش رو انشالان انحلال یا انحلال واقعی یا تر در نکات خود. پس بنابراین ما در باب اصول عملیه یک نوع ابداع نفس داریم غیر از واقعه و لذا ما بحثی دارم آقایان که چرا ملاقی هدل اطراف منجس نیست میدونی که از این دوتا اینا نجس دست شما به یکی خورد میگرم نجس نمیشه دستو. و هر دو بخوره چرا به یکی نمیشه از اون میگن اجتناب واجبه از از اون میگن با یکی اینه هر کدوم به تنهایی اجتناب واجبه اما اما که دستتون بهش خورد دست نجس نمیشه آبی باشه بر نه که آبی دست ملاقات هست خدا آب بینه موجود نباشه اینکه ای تو دستون آب بریزین دایره توسعه بدید بله نج... این رو ما... ما خیلی راحتی مشکل رو حل کردیم آرخو بحث دارن اینشان رو عرض می کنیم خلاصش اینه که کل واحد من از طرف نجسون ابداعی و مجموعشون نجسون انتباعی این فرقش اینه حالا به جای نجس انتباعی نجس واقعی پس یک نجسی که شما درست کردید این کل واحده و عدله تنجیز متنجس که ملاقات با دم موجه به نجازت عدله تنجیز انصراف داره از نجیز ابداعی ناظر به نجیز واقعی کلاه همه نجیز واقعی احد هما کل واحد من همه نجیز ابداعی نجیز ابداعی منجیز نباید بود اون ابداع صورت زنیه شماست اینشانا توضیحاتش هم بعد ارسایی تا اینجاش این اجمالا درست اونی که ما الان می‌خوایم امروز می‌ذاریم ها صحب کنیم اینه که در شواباطو حکمی خوب دقت بفرمایید این فرد در شواباط موضوعیه میاد اما در شواباط حکمی بیشتر محله کلام نقطه اساسی در شواباط حکمی کل اصولی که جاری میشه یعنی اصولی که در شواباط حکمی جاری میشه علاوه بر جریان به طور کلی به دو قسمت اینو می‌خوام خیلی توضیح بودیم. یکی اصولی هستن که شعمون اونها اثبات خود و حکم به عنوانه. هستن. یکی اصولی هستن که حکم رو به عنوانه ثابت نمی کنن. با به عنوانه مجهول براتون ثابت می مثلا احتیاض از این جاییه. احتیاض مثلا نمیگه گوشت خرگوشم حرام، گوشت اون حیوان دیگه رو چون دو تا روایت دارن. احتیاض این نمیگه گوشت حرام. احتیاط میگه چون نمیدونی کدومی که حرامه. علم اجمالی به حرمت احد احماد از هر دو اجتناب بکن خوب زیادی عنوان نمیده نمیگه لحن خرگوش به عنوانه عنوان نمیده به شما بگیه مثلا گوشت مثل فرکون جوی یکی به عنوانه عنوان نمیده براعت عنوان نمیده اگر شما شک کردین که سیگار کشیدن حرامی یا نه مثال محروبشون که بعدها پیدا شد اگر براعت قارشونی که اجازه اصول هست و ج و حکم کردیم به عدم و حرمه. نمیگه سیگار کشیدن به عنوان حرام نیست میگه مجهول الحقم حرام نیست خب سیگار رو به عنوان مجهول الحقم میگه حرام نیست آه عنوان بشه میده نه عنوان خود عمل فی نفسه این یک طایفه از اصول عملی یک طایفه از اصول عملی به عنوان میده اینو خوب بقت رو کنیم این فنیه چون جای زید نشده؟ این الان در اصولی که متعاربه در وضعه های ما در استثابه چرا؟ چون استصحاب مفاضش اینه این خانم مثلا که قبلا وقتیش حرام بود در وقت رؤیه حالا هم حرامه نه این خانمه وقتی زن مطلقه این آب نگهت بود قب دقت میکنیم قبل از اینکه تصمیم کور بشه بعد از اینکه تصمیم کور شد نجسه خود به نجاست حکم می‌کنه نه عنوان دیگه نداره اون عنوان مثل علت به صحیحت تحلیلی است یعنی بگیین این حیثیتش تاثیر داره اما ما خود حکم رو اثبات می‌کنه ما در اونجا در مثل احتیاط اجتناب از دو طرف بکنیم خب بکنیم در اینجا حکم به نجاست میکنیم بلا میدونم بنای بر نجاست نه چون که ما یکی نجس میدونیم بنا بر اجتناب از هر دو پس بنابراین خوب دقت بکنید البته اونی که الان در کلمات اعلام مشهوره در قسم دوم که خود و باشه میباشه رو آوردن حالا اینجا یه مقداری من توضیح بدم که قبل از رو در بحث و نافعه اینشالله رو روشن میشه اولا غیر از استصحاب ما معتقدیم که خود قیاس هم که آقایون اهل سنت بهش کردن یک نوع شبیه اصل تنزیریه مثل استثابت اگر قیاس هم خود باشه و جز اصول تندیلی باشه که الان عرض می امروز یا قرآن عرض می در اونجا هم خود و حب میشه می به عنوانه مثلا میگه گه اشاره مقدس شراب انگوری رو حرام کرد ما می شراب خرمایی هم حرام خب شراب خورمایی حرام شراب خرمایی رو به قیاس اثبات و حرمت درش می کنیم. در این جا با استصحابیه یکی از اصول دیگر یک لحظه از اصول دیگری که باز اثبات حکم میکنه چون وقت خیلی کم من سریع مطلب رو تمام بکنم یه تکرارش نمیکنم فرضوا این اساس طهارم همین اساس طهاره اگر قائل شدیم که ظاهر مشهور قائل هستن که در شوباز حکم یه جاری میشه هر چیزی که به لحاظ کلی شک بکنیم طاهر یا نه بقوله مثلا یک موجودی یک مایه ای رو ما در کاره ماه بیدا کردیم در کره مریخ بیدا کردیم حکم کرد شک کردیم که آیا تاهر است یا نه بنابراین که اساس و در شباتو حکمی جاری بشه وقت در اونجا حکم به تهاره میکنید من سابقا توضیح دادم خوب دقت میکنید این چون مطلب است. از کردیم ما اصولاً در مثل اساس و اساس و دو تا م... مطلب داریم در کعابی رو علمای من تا علمای ما تا که من دیدم تفریقه نکردن فرق در این یکی اثبات اباهه و حلیت واقعا یکی اثبات اباهه و حلیت در زلط شک گاهی به این گم قاده, فار... قاده یا اصافی ما این ارزو کردیم که اگر این اصطلاح جا بیفته حال وقت خوبی خوبیست و اون این که اگر ناظره به واقع باشه و حکم شیفی نفسه اسمشو فایده بگذاریم اگر ناظره مقام شرک باشه اسمشو اصال اصلا بگذاریم منو به به به حالا اینم دقیق نیز در کلماتشون این که شما بفرمند پیل کلم وقت اینطور میشه قاعده هل قاعده چی؟ یعنی خداوند متعال هر چیزی رو به عنوان حلال قرار داده واقعا هر چیه به عنوانه استعمال زفت و سود بلند هر چیه به عنوانه استعمال مثلا سنگ های کوره ما هر چیزی رو استعمال انواع مثلا برگ های درخت که اصلا تازه آشنا میشه هر چیزی رو شاره به عنوانه دقیقه بکنیم این رو اسمش رو بزنین مثلا دلیلشم هم غلظه موافله عرض جمعی ها این اسمش رو می‌ذاریم قاعده حس اما اصالت حس این نیست اساس هست اونجاییه که ما شک درش داریم مثلا نمیدونیم این به اصطلاح این تنیری که الان تو بازار هست این از میته گرفتن یا نه این گوشی که در بازار هست در بازار ها تذکیه شده یا نشده پس یه دفعه ما حکم می‌کنیم چیزی عنوان مشکوک اون رو اسمش دیدم اصالات یه دفعه حکم میکنم به یک چیزی به با عنوان واقع اون رسیم تا آهده من ارض کردم سابقم یعنی شما از ارض کردم ما قایده هل رو من هیس المجموع هلوم از عدله میتونیم در بیاریم که هر چیزی به عنوان هلاله اما اصالات الهل معروفه بین علماء در شباط حکمیه از سالات بین علماء معروفه لیکن انصافا دل واضحی نداره مگر همین تسالوم اصحاب اینها به الله دل واضحی برای اساس سالات در دست نداره اما قاعده هل چرا؟ حالا این چیز من می کنم تامم بکن؟ اما راجید تهارت قاعده تهارت نداره یم یعنی بگیم از روابط درمانش که خدا هر چیزی رو خلق کرده همه چیز رو خدا تا هر خلق کرده این هم چیزی می‌دهیم. اما اساسا تا هر داریم. اساسا تا هر در شواهد موضوعیه که جای شک شکل می‌نجدی یک پاک است. این نباید رام در شواهد حکمیه که فلان حیوان خاص، فلان موجود خاص موجودی که عنوان نداره. آیا این پاکیانه؟ هر چی به نه به شواهدی باشه؟ اصالت صوره در اینجا جاری میشه هم در شواب موضوعی یه جاری میشه هم در شواب حکمیه اینجا تنها اصلی که بعد از استصحاب یا بیاشه نظر ما در شواب حکمیه تلقی میشه دیگه اصل ما در شواب حکمیه نداریم مراد ما اصل یعنی اصلی که عنوان ثابت بکنه اساس الاحتیاد عنوان ثابت نمیکنه لزوم اجتناب رو ثابت میکنه یا جواز ارتکاب مثلا اما ما به این عنوان اصلی داشته باشیم که عنوان بده یکی اسالت و تهارت در شباهات حکمیه چرا میگم اگر ثابت بشه شما مشهوره منم مشکل نداره منم بالم که من معطلبه مشکل مشکل اینه که در اسالت و تهاره ما یک دلیل داریم تنه یک روایت منحصر هم هست دوم هم نداره اون روایت هم امار ابن موسای صاباتی فتحی نهار کرده کسی یه نقل تو اون روایت هم کلوش نظیف نذیب حتی تعلمه انه و خزران آمده کلوش ان طاهر نیست سه نه نظیف هم یه روایتون را نذیب لذا ممکن است که کلوش شیء نظیف به موضوعان خارجی از هم بخوره اون وقتی بهت مطرح هم کردیم ما اگر بخوایم از دستان دلیل قاعده بفهمیم یا اطالت ترقش چیه؟ این زابطشه از کرده هر جا قاید رفت روی واقع حکم اونجا قاید است. هر جا قاید رفت روی این اون اصله نه قواد فقیه اصول هست در شباهات موضوعی هست. بگن مجازه اصطلاح من صحیحش اینه قایده در اینجا در هلو تهارت مهمی روی نه لازره که اون واقعه نه اونها مختلف بگه لا استف... اصلا اون قبائد فقهیه مثل لازار سوق مسلمی هست هیچ کلوشون در شبهات و جاری می هیچ اصل تنظیری ما در شبهات و نداریم الا اصطا هیچ اصل تنزیلی. خوب دقت کنیم هر جا آمد غایت به واقع حکم خورد میشه قایده میشه حکم واقعی هر جا غایت به علم خورد میشه حکم ظاهره میشه قایده مثلا دو کل این مطلق حتی یرده فیه نحیان ببینید کل این مطلق حتی یرده فیه نحیان اگر این رواست ثابت باشه چرا بگم اگرچه این رواست ما نداریم الا شیخ صدوق منفرده هم هیچ جام شیخ صدوق باسته هم نهارده مرسلن شاهل دیگه از این رواست نداریم یک رواست داریم که سعز و انصلاف فکرمز فکر تا بردستان مطلقان لا برسه به کلمه م اما اگر ما همچی دلیلی داشتیم این نازر به واقع چون میگه حتی یر رفی نحیون تا عمل حتی یر رفی یعنی واقعاً حلاله میشه قاعده این کلوشه این مصلر حتی یر رفی نحیون میشه قاعده اما اما کلوشه این حلال حتی تعلمه انه و حرام تا غایت علم شد میشه اصل ظاهری شده علم، حکم با علم من عوض نمیشه خود دقیقه رو کنیم حکم اگر قایت ورود حکم و نفت اصلا این حکم رو هست تا نفت بشه اینجور گفت تا نفت بشه میشه شما برای شما پاک تا بدانیم میشه ظاهری همیشه در نصال دلیل اون قایت و نگاه خود هر وقت قایت به علم خود میشه حکم ظاهری میشه عصد اصلا اگر قاید به خود مقام جعل و تکلیف و اینها خود اون مناسب است با قاعده و خیزا ما در مورد اساس و طهاره اینه داریم کلوش این نظیف حتی تعلن تا کفت حتی تعلن دیگه در دقاعده نمیخوره میشه اساس و کل کلوش این لکه حلال حتی تعلن این حتی تعلن هایی که در کلوش این لکه حلال کل افیه حلال و حرام فا اون لکه حلال فا اون حلال ها حتی ت اونایی که از این مقبوله هستن اینا تمام میخورن به اساس رو خیلید بله اگر داشتیم کل نوشه این حتی یره دره توی نحیان این میشه قائده یعنی میشه حکم واقعی این ضابطه رو به از سر یه مقدار اینجا توضیح